اگر بخواهیم هدف های ملت ایران را در یک مفهوم خلاصه بکنیم اون مفهوم کلیدی عبارت است از مفهوم پیشرفت پیشرفت پیشرفت در منطقه اسلام متفاوت است با پیشرفت در منطقه تمدن مادی غرب عزت ملی به اعتماد به نفس پیشرفت شاخص هایی دارد یکی از شاخص های پیشرفت عزت ملی به اعتماد به نفس ملی است من ادعایم اینه که با لحاظ این شاخص ملت ما پیشرفت زیادی کرده است ما امروز ملتمان دارای اعتماد به نفس در عرصه سیاست بین المللی است است. یک شاخص دیگر برای پیشرفت شاخص ادالت هست اگر کشوری در علم و فناوری و جلوه های گوناگون تمدن مادی پیشرفت کنه اما ادالت اجتماعی در آن نباشه این به نظر ما و با منطق اسلام پیشرفت نیست تقادل دنیا و اساس نگاه اسلامی به پیشرفت بر پایه این نگاه به انسان که عرض می کنم اسلام انسان را یک موجود دو ساحتی دنیا و آخرت، تعادل دنیا و آخرت هم در برنامه‌ریزی، هم در عمل شخصی، هم در اداره کشور هر دوی اینها لازمه استقلال است. هر الگوی از الگوهای طراحی شونده برای پیشرفت که کشور رو وابسته کنه زلیل کنه دنبال رو به کشورهای مقتدر و دارای قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی بکنه مردوده یک اصل مهم مسئله استقلال است. که اگر این نباشه پیشرفت نیست سراب پیشرفت هست من زنده ام دیوتا در کنار سرچ باشد تن جون چه باشد بر کفتا سپاردن